اگر همسر آدم کاری انجام میده که اون کار گناست آیا ما باید واکنیشی انجام بدیم باید چطور برخورد کنیم هم اقتداره مرد آسیب نمیرد هم این عمل را ترک کنه وقتی شما اینقدر توجه دارید که مرزتون باید مرزانگیش در خونه بین خودتون و بسرابا حفظ بشه میفهمید که چه موقع های حالش خوشه اون موقع های تذکر روشن کوتاهی بدید این مان